صفحه 19 آنچرا که زرتوشت در آوردن دین کرد سموعوده آین زرتشتی یعنی هوشی در و هوشی در ما و سوشیانس به کمال خواهند رسانید آموزگار تفزلی 1375 صفحه 112 روایت پهلوی بهار 1376 صفحات 278 و 288 جز افسانه و داستان برخی از آگاهی های تاریخی نیز، از متون اوستایی برمی آموزگار تفضلی 1376، صفحات 25 و 26، نام خاندان او اسپیتمه یا اسپیتامه است، نام پدرش است و نام مادرش دقدو یا دقدویه بوده است. نام برخی دیگر از اعضای خاندانش ماننده میدیوما، پسرعموی پسر اموی زرتوشت و پروچیستا کوچکترین دخترش در خودگاهان آمد است. از فراسوی افسانه ها از مجموعه آگاهی های ما درباره زرتشت یکی هم این است که وی از کودکی آموزش های روحانیان دیده است و خود را زودتر می خواند یسنه بند 6 پس از رسیدن به پیامبری برای تبلیغ دین خود در برابر تعدی معاندان خیش ناگزیر به حامی مقتدری چون گشتاسب پناه برده است نام گشتاسب بسان حامی و گسترنده دین زرتشت و نام فرزندش اسفندیار که پهلوان دینی سنتی زرتشتی است و نیز پشوتن فرزند دیگر گشتاسب که از جاویدانان است و سرانجام در نقش منجی ظهور خواهد کرد افسانه و تاریخ را در هم میآمیزد چهار كهن دینی پیش از زرتشت با توجه به آموزش روحانی زرتشت و مجادله با معاندانی که روحانیند انتظار می‌رود که آنچه به تازگی آورده بوده است در تضاد دو خلاف با باورهای سنتی کهنه جامعه باشد در حقیقت باید پرسش را با دقت بیشتری و چنین مطرح کرد که تا چه میزان از عقاید و باورهایی که زرتشت آن را به جهانیان اعلام داشته است با باورها و اعتقادات قدیمی هماهنگی داشته و چه میزان از آنها نوین و خلاف سنت بوده است ابزاری که برای یافتن این تمایز در دسترس است، سنجیدن باورهای اوستایی و هندیست در بله دیگر، باید اختلاف میان دو بخش متمایز اوستا، یعنی گاهان که پیام آسمانی شخص زرتوشت است و اوستای غیر گاهانی را منظور داشت و سپس به تفاوتی برداخت که از این نظرگاه میان اوستا و متون بعدی هست. همچنان که زبان اوستایی با سانسکریت خیشا‌بنده است و هر دو را شعبه شرقی زبان‌های هند و اروپایی می‌شمارند انتظار می‌رود که میان فرهنگ و دینهای سخنگویان به این زبان‌ها در ایام کهن نیز همانندی و شباهت وجود داشته باشد البته گذشت زمان و تغییرات ملازم آن و نیز آمیختگی باورهای کهن با عقاید مردم بومی در مناطقی که این اقوام اقوامبان ها مهاجرت کردهاند و سپس بیگمان گمان تغییراتی که مجموعا در پی این ترکیب در مذهب آنان روی داده است از جمله علت های مهمی است که گفتگو در باره این مشترکات باستانی را دشوار می کند. با وجود این، درباره برخی از مفاهیم در نظریات پژوهندگان همداستانی و توافق است. بهار 1376، صفحات 455 تا 488. اسطوره و نام های مشترک هندو و ایرانی، هینز 1375، صفحات 55 تا 57. و آین های مشترک مثل تحییه هوم ایرانی یا سومای هندی و مفاهیم مشترکی مانند اشه اشا در ایران آرتی ای سانسکریت در دو فرهنگ ایرانی و هندی دیده می شود هر یکی از این مشترکات کهن در دوره های بعدی شکلی ویژه به خود گرفته است از مفاهیم کاهن هندو ایرانی مفهوم ارته یا اشه به معنی راستی در گاهان زرتشت اوج گرفت است. این اوج گرفتن و رشد کردن را نکتیبه های حخامنشی هم می تواندید. در گاهان و نیز در دین حخامنشیان آفریدگار اهورامزداست این دو خصیصه مشترک را برخی ابداع زردشت و برخی نیز حاصل تحول دین ایرانی پیش از پیامبر بر می در واقع میزان اختلاف میان این دو مرحله را به آسانی نمیتوان تعیین کرد و برش مرد حقیقتی نست که نام زرتوشت یگان است از مردم که از آن روزگاران به عنوان آموزگار و پیامبری که به او وحی شده است و پیام او را میشناسیم در دست است حالانکه که سنت قام هندو اروپایی از دیرباز شاعرانی را که بازگوینده وحی و الهام ایزدی بودند میشناخت است آیا زرتشت تا چه میزان در پدید آوردن تفاوتی که میان این مفاهیم به چشم میخورد ابداع و نوآوری کرده است پنج آموزه گاهانی گفتگو درباره آنچه در گاهان می‌آید، برگزیدن و اختیار کردن یکی از چندین ترجمه و برداشتی است که پژوهندگان و متخصصان از متن گاهان به دست دادند. معروف است که هیچیک از دو ترجمه گاهان با هم یکی نیست و با دیگران تفاوت دارد. این خصیصه را دلایلی جدی موجب می‌گردد. نخوست دوردست و دیرینه بودن زبان گاهان و دیگری بسیار محدود و کوتاه بودن متن آن است. همچنین زبانی پیچیده و تعبیراتی بسیار ظریف و دقیق دارد که نکاتی سخت، استعاری و موضوعی بقرنج را بیان می‌کند. همه این دلایل است که درباره این قدیمیترین و مقدسترین گفتار و کلام در دین زرتشتی که ارزش و اهمیت آن از دیرباز بی‌نظیر شناخته شده است، هر پژوهنده و صاحب نظری بر حسب حال گمانی دارد. آن را گاهی فلسفی و اخلاقی و گاهی آیینی و اساطیری می‌بینند و گاهی عرفانی، گاهی نیز فقط از بعد تاریخی مینگرندش. در اینجا چون موضوع اصلی گفتار دین معاصر و زندگی زرتشتی است از همین نظرگاه دینی و اخلاقی و با توجه به متون پهلوی که ادامه تفکر کهان درباره است مختصری سخن خواهد رفت دین زرتشتی هرگز دوگان پرست نیست بلکه میان نیکی و بدی قائل به تمایزی است قاطع و این تمایز معنی و اعتباری اخلاقی دارد معیار این تمایز خرد مردمی و حمایت از حیات و زندگانی نیک و خوشی است برای بیشترین شمار از زندگان تجلی این دستور در اندیشه یا پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک پدیدار می گردد. تمایز میان نیکی و بدی بنابرگاهان گونه اختلاطی را بر نمیتابد و بدیهایی چون خشم و دروغ را بی تردید و محابا بد و ناسدوده می شمارد. به علت همین ابرام و قاطعیت در خوب بودن خوب و بد بودن بد است که نظرگاهی جهانی نیز در معیت آن مطرح می‌گردد نیکان صرف نظر از خاندان و نژاد و گروه و طبقه خیش بنابر کردار نیک و بدشان باز شناخته شوند و آفریدگار جهان داور نهایی است در ارزیابی میان خوب و بد در تعریف و توافق بر معنای نیکی و بدی در اینجا ابعاد طبیعی و ساده زیستی معیار است خرد حکم میکند و احکام آن را میشود با دقت کاوید و با معیارهایی هرچه چه عینی تر سنجید و نیک را بر بد برگزید راهنمای ما برای چنین گزینش و انتخابی چیزی نیست جز منش یا اندیشه نیک درباره چیستی این مفهوم که واژه اوستایی ووهو منه فارسی بهمن آن را القا می کند میکند میشود با آن صورتی مراجعه نمود که در شکل اصلی باورهای زرتشتی از دیرباز پذیرفته و معمول بود است گوسپند در گیتی مایملک بهمن است و هر که باید که بهمن را ستوده دارد میباید که گوسپند نیکو آفریده را پاسداری کند شایست ناشایست 1369 فصل پانزده بند نه گوسپند در این متون به معنای مطلق جانور و جانور نیک است بنابراین حمایت از زندگانی به معنای مطلق کلمه با نیک منشی و اندیشه نیک یکتایی میابد و یکی میشود حمایت و پاسداری از زندگانی و حیات اصلی مقدس است که به علت رجحان طبیعی و فطری هیچ جای گفتگو و بحث ندارد. هرگاه سخن از هرگونه اعدام و جنگ شود و ضرورت مبارزات قاطع با زندگانی به معنای مطلق آن آنتی آید که طبعا قربانی کردن حیات یکی یا تعدادی اندک به پاس نجات دادن شماری بیشتر از زندگان است آنگاه صفت نیک را برای گوسپند باید به یاد آورد و اصولا این نکته را که گوسپند اصلا صورت تحول یافته گا اسپند است و اسپند معنای نیکی و تمایز و جدایی از بدی را در خود دارد. باز در این تعین مرز و تعریف میار خرد مطرح می گردد و درست منشی را خرد منتجه و فرزند است چنانکه که سپندارمز را. دین کرد چاپ مدون جلد دو صفحه 922 سطرای 12 و 13 خرد اصولاً فطری و از آن هرمزد است درست منشی ترجمه بوندگ منیشنی و آن خود برگردان سپندارمزد است. به بیان دیگر خرد را وجود حیات که هرمزی است به مردم میبخشد و نمادهایی چون امشاسپند سپندارمزد و امشاسپند بهمن تجلی ذهنی و صورت تجریدی اند از خردمندی و منش نیک در آمیختن آموزش اخلاقی و بیان نمادین در همه کتابهای مقدس و نیز تفاصیر آنها شکل غالب است در گاهان نیز همیشه همین شیبه معمول است و جای وسیعی را برای تفکر و اندیشه و بینش دینی و فلسفه اخلاق باز میگذارد. هرمزد آفریدگار شش امشاسپند است و امشاسپندان یعنی بیمرگان مقدس این شش نماد اندیشه نیک امشاسپند بهمن بهترین راستی اردیبهشت بهشت شهریاری آرمانی و دلخواه یا ملکوت خداوند، شهریور، فروتنی مقدس، یا درست منشی، امشاسپند، سپندارمز، کمال، خرداد، بیمرگی، امردادند. خود واژه امشاسپند در گاهان نیامده است و اینان در اوستای غیر گاهانی و در متون متأخر گاهی جنبه اساطیری و نامجرد به خود می گیرند. با وجود این جوهر اخلاقی و عرفانی با این مفاهیم همواره ملازمت دارد و به صورت ضمنی همراه با آنها القا گردد. همین ملازمت است که پیوسته در آثار مکتوب و نیز آموزش‌های شفاهی و زندگی زرتشتی به چشم می‌خورد و اعتبار آنها را تضمین می‌کند. بهمن نخستین آفریده و راهبر است که با یاری بهترین راستی درویشان و رهروان را به شهریاری آرمانی، خداوند و ملکوت الهی می‌رساند. این شهریاری آرمانی وچهی در آفاق دارد و آن حکومت نیک جهانی است. نیز وچهی در انفس دارد و آن قدرت در سلطه برخیش است و منتجه و برایند آن رسیدن به درست منشی و سلامت نفس است که امشاسپند سپندارمز نماد آن است. از آن پس دست دستیافتن به کمال و بیمرگی امکان پذیر می گردد. این دایره ایست است که آدمی را به کمال معنوی و روحانی می کشاند چنانکه ملاحظه می شود سلوک عرفانی و میزانهای اخلاقی در این دایره کمال با طرحی منظم به چشم می خورد و جای تفکر و بحث در آن باز است همچنین در همپرسی زرتشت و دریافت وحی همین مراحل پدیدار می آید. همچنان که این مفاهیم در دوران بعدی به سوی گزیدن قالبهای اساتیری گرایش میابند و مثلا بهمن را در کالبد نمادین مردی نورانی میبینیم و یا به سوی آن میگرایند که ستایش آنان چونان ایزدان برخواسته از وجود خدایان هندو ایرانی در سرودهای مقدس یعنی یشتها بیاید از سوی دیگر تفاسیری هست که ارتباط آنان را با اخلاق و هنجارهای اجتماعی بیان میکند و استوار می دارد. و نیز اینکه آنکه پرورندگی آفریدگان را به درستی و شایستگی کند پس او برای بهمن فرزندی هرمزد را تصدیق کرده است و آنکه آفریدگان را که اندر سرپرستی اویند به خوبی نگاهداری کند پس او را پذیرفتگی حکم اورمزد را به پدری بهمن مقام باشد دین کرد چاپ مدون صفحه 879 سطرهای 9 تا 12 ادوام همین شیوه اتصال و پیوستگی میان مفاهیم دیرینه گاهان و اندرزهای روزانه برای رفتار جمعی از دیرباز حفظ شده است و چنین است که قداست پیام آسمانی زرتشت حضور حساس و زنده خود را همواره در حیات اجتماعی و اخلاق فردی زرتشتیان برقرار داشته است. بزینش خردمندانه و آگاهانه نیکی بربدی یا به اصطلاح مچون فحلوی گزیداری مفهوم مهم دیگری است که درگاهان می آید. یسن سی بندهای چهار و پنج. این مفهوم که از آن به اختیار در برابر جبر تعبیر می شود باید در قالب اندیشه و گفتار و کردار یسن پنجاه و سه بند دو نمود یابد. و در این قالب است که گزیداری میان نیک و بدی پدیدار می آید یست نسی بندهای دو و سه حاصل این گزیداری و رجحان نهادن نیکی بربدی در این جهان نصیب جامعه و فرد می گردد که برقراری نظم راستین در روابط میانه مردم است. تکاتک مردمان در این فرایند مسئول و مکلفند و این تکلیف دینی آنان است که روان هر کس در سرای دیگر از آن به پاداش نیک یا بد می رسد. بهشت یا بهترین هستی و دوزخ یا هستی بد نیز از مفاهیم مهم گاهانیست که تداوم زندگانی پس از مرگ را به صورت بخشی بنیادین از باورهای دینی اعلام می‌دارد. چکیده و دورنمای خردی که آورده شد، نمایی از آموزش‌های گاهانی را به صورت کلی و مختصر باز میگوید در آن به ویژه تصور کلی و انتزاعی از شر نقشمند است که به ویژه در وجود اهریمن تبلور می‌یابد این نوآوری مهمی است که تجلی بدی در اندیشه و گفتار و کردار را بازنمون می‌کند ابعاد دیگر آموزش های گاهانی بسا که میتواند مورد گفتگو و تجزیه و تحلیل و نیز رد و قبول واقع شود اما بعد اخلاقی و تکلیفی که مسئولیت آدمی را در برابر دیگر مردم و آفرینش و نیز خیشتن خیش معلوم می کند وچهی روشن و بارز است که در قالب دستورهای ساده و پیام آسمانی زرتشت آمد است این وجه بارز در اوستای غیر گاهانی و تفاسیر اوستا و سپس در دیگر متون پهلوی و فارسی به انهای گوناگون تکرار می‌گردد و پیوستاری و تداوم آن را در طی تاریخ طولانی جامعه زرتشتی همواره می‌توان در حیات اجتماعی مشاهده کرد در صفحه 26 تصویری از روحانی زرتشتی در حال نیایش و تصاویری از ابزارهای آینی نیایش درج شده است صفحه 27 فصل دوم تحولات کیش زرتوشتی تا اسلام با گام نهادن اقوام ایرانی به عرصه تاریخ پرتوی روشنگر بر چگونگی باورهای زرتشتی و تحولات آن میافتد. گرایش و اتکای عقاید جامعه زرتشتی به تاریخ ایران و پیوستاری اندیشه دینی میان اکنون و گذشته نگاهی به این تحولات را ضروری می سازد و حضور و تأثیر مقان در شکل گیری و تداوم آینهای زرتشتی پیوند میان گذشته و حال را معنی میبخشد. عقاید و باورها و آداب و رسومی که نشانهای تاریخی آنها از روزگار مادها و حخامنشیان و اشکانیان در دست است در دوران ساسانیان به آن شکل نهایی و صورتی پرداخته رسید که سپس با پذیرفتن تحولاتی چند تا این زمان در نزد زرتشتیان بر جایی مانده است 1. دین مادها، حخامنشیان و اشکانیان. نخستین تاریخ تاریخ‌های ضبط شده در باب اقوام ایرانی و مهاجرت آنان به این خطه دو تاریخ 844 و 836 قبل از میلاد است. گرشمن 1368 صفحه 87 بر این اساس روشن می‌گردد که در قرن نهم پیش از میلاد اقوام ایرانی در این سرزمین استقرار یافته بودند. با گذشت زمان و در جدال سخت اتحادیه ماد مرکب از چند قبیله پدید آمد سرانجام همین اتحادیه نخستین حکومت ایرانی را گذاری کرد خاندان دیائکو ابتدا شهر آشور پایتخت کشور آشور را در 614 قبل از میلاد و سپس شهر نینوا را در سال 612 قبل از میلاد به تصرف درآوردند فرای 1368 صفحه 119 با سقوط این شهر حکومت آشور منقرض شد شواهد نشان می‌دهد که ماتها بر همان دین قدیمی نیاکان بودند درباره یک دوره هخامنشیان 550 تا سی قبل از میلاد از روی کتیبه‌های آنان و نوشته‌های مورخان و نیز آثار باستانی میتوان داوری کرد همچنین الواح گلی که به زبان و خط ایلامی در تخت جمشید یافت شده و به الاوه بارو و خزانه تخت جمشید معروفند راهنمای گویایی در این بابند همانند با دوران مادها نشانه‌هایی ماننده کار رفته نام ایزدان در نام اشخاص بودن مفهوم فرح که تداوم آن در اوستا و نیز پهلوی و فارسی و حتی به شکلی دیگر در زبان ایلامی و اکدی میابیم نمای از دین و آین حخامنشیان را روشن می کند بهار 1376 صفحات 437, 438 و 404 در کتیبه های حخامنشی می که اهورا مزدا خداوند بزرگ و آفریننده آسمان و زمین است که مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید به اراده اوست که شاهنشاه هخامنشی به شهریاری رسیده است. بزرگی اهورامزدا همان معنایی است که در اوستا و دین زرتشتی هم دیده می شود. گرچه نامی از زرتشت در هیچ از این آثار بر جای نیست. جز اهورامزدا نام دو ایزد اوستایی یعنی مهر و آناهیتا یا ناهید در کتیبه های حخامنشیان میآید. این دو نام در کتیبه های دوره دوم شاهان حخامنشی یعنی اردشیر دوم پدیدار می گردد. از الواح بارو و خزانه تخت جمشید بسیاری از نشانه دیده می شود که با آنچه در اوستا میآید همانند است مانند نام ایزدان مثلا سپندارمز و نریوسنگ ظرفی از سنگ سبز یشم از تخت جمشید به دست آمده است که می شود آن را از ابزارهای ساختن نوشابه آینی هوم دانست. گیرشمن 1368 صفحه 175. تصاویر آتشدان هایی که بر سنگ کنده شده است بازگوی همان مرکزیت کوهن آتش در کیش هخامنشیان است. همچنین قربانی اسب که برای آمرزش روان کوروش بزرگ انجام می گرفته است. بویس 1375 صفحه 110 از یک سوی تداوم آین های قربانی در یعشت هاست که به دوران پیش از زرتشت باز می گردد و از سوی دیگر برعرج گذاری و بزرگداری فروهر در گذشتگان در کیش مردم آن روزگار دلالت می کند. به دین شمار با آمدن نام اهورامزدا مزدا، در کسیبه های حخامنشی مشاهده می شود که حخامنشیان نیز مزدی هست یعنی مزداپرست پرست بودند. آفرینندگی دادار هرمزد و نکاتی چون تکیه بر اهمیت شادی باز در دین اوستایی دیده می شود. دو مفهوم راستی و دروغ گواه بر جدایی نیکی و بدی در نظر حخومنشیان و نظیر به اصطلاح سنویتی است که کیش ایرانیان باستان را تمایز می‌بخشد. با وجود این چون از زرتشت نام و نشانی در این کتیبه ها نیست و آین تدفین شاهان حخامنشی با آنچه در وندیداد می آید به نظر می رسد که انتباق کامل ندارد تردید است که آیا حخامنشیان زرتشتی بودند یا نه. از زمان اردشیر دوم همانندی های بیشتری میان کیش حخامنشیان و آین زرتشتی شناخته شده و رسمی در دوران ساسانیان پدیدار میگردد. جشن نوروز سالیانه در تخت جمشید برگزار می شد است. بویس 1375 صفحات 51 و 159 جشن بهاری نوروز با جشن بابلی الف کاف ی ت واو بویس 1375 صفحه 51 و مراسم آن پیبند دارد به نظر می رسد که تلفیقی میان آداب آن و آینهای کهانتر نیاکانی ایرانیان مانند مراسم بزرگداری در گذشتگان که در روزهای فروردیان ده روز آخر سال درست قبل از ناروز برگزار می شود صورت گرفته است بهار 1377 صفحات 169 تا 173 این را نمونه ای از تلفیق میانه باورهای کیشکوهن ایرانیان مهاجر و دین و فرهنگ و عقاید مردم بومی این سرزمین میتوان دانست. نمونه دیگر رشد آناهیتا یا اردوی سور اناهید زن آبهای گیتی و مینو و نماد باروری است به اثبات رسیده است که اولا گسترش و اوج گرفتن آین اردبی سوربانو با باورهای مربوط به ایشتر و الهه ننه یا خاتون در پیوند بود است سانیان اردشیر دوم هخامنشی خلاف بیزاری سخت ایرانیان از پرستش بت تمثال ناهید را در پرستشگاه های کشور برافراشت. بایس 1375 صفحه 320 همچنین نفوذ دانش ستاره شناسی و دیگر علوم بابل بر باورهای ایرانی روشن شده است. بویس 1375 صفحه 51 از اسناد بارو و خزانه جمشید برمیآید که هخامنشیان نسبت به ادیان دیگر ملتها با تصاحل و رواداری رفتار میکردند و حتی برای نیایش و ستایش هزینه برابر با مردم خودی به آنها پرداختند همین گونه تصاحل و حرمت به دیگر ادیان را در لوحه استوانهای فرمان کوروش بزرگ 1356 می میتوان دید آزاد کردن یهودیان در بابل به فرمان کوروش نمونه از این رفتار بزرگوارانه است که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است. قایمی 1349، صفحات 93 تا 109. اشعیا نبی کوروش را مسیح خداوند می‌خواند. اشعیا نبی 45، صفحات 1 تا 14. همچنین ایرانیان به تجدید بنای هیکل در اورشلیم یاری کردند. در 515 قبل از میلاد ساختمان آن به پایان رسید. فرای 1368، صفحه 226. داریوش بزرگ به اجرای قوانین و عدالت در میان اقوام مطبوع در شاهنشاهی هخامنشی توجه خاص داشت. گرشمن 1368، صفحه 168 و 170. هنگام سنجیدن لوح آشور بانیپال درباره فتح شوش و ویران کردن آن مجید زاده 1370 صفحه 103 با فرمان کوروش بزرگ برتری اخلاق مندرج در گفتار کوروش به روشنی به چشم میخورد. اسکندر وفات 323 قبل از میلاد که به ایران لشکر کشید در صدد بود که فرهنگ یونانی و به اصطلاح هلنیسم را در جهان گسترش دهد به همراهی سپاه او قشرهای گوناگون مردم یونان و مقدونی هم به ایران و ممالک تابعه حخامنشیان سرازیر شدند و شهرهای یونانی نشین متعددی ساختند که به اسکندریه معروفند از این شهرها و نیز آمیختگی فرهنگی که هدف اسکندر بود ویژه در درون مرزهای سیاسی کنونی کشور ایران آثاری اندک برجای است اما در دولت باختر بهار 1376 به صفحات 109 تا 113 و نیز در غرب ایران کالج 1380 صفحات 128 تا 147 بقایی بیشتری از فرهنگ هلنی دیده می شود. اناثری از دین یونانی نیز در شمال شرق و مغرب ایران از آن روزگار بر جای مانده است. کالج 1380 صفحه 92. نظر پژوهندگان بر برانه است که در سراسر سر دوران سلوکیان و پارتیان آین زرتشتی در سیر تحول گام میزده است که سرانجام در زمان ساسانیان شکل و صورت رسمی به خود گرفت. ایزی دور خراکسی میگوید که در شهر آساک آنجا که اشک تاج گذاری کرد آتش جاویدان را نگاهداری میکردند. سر اورل اشتاین سکه های پارتی و ساسانی بسیاری را بر فراز کوه میدان نفتون در معادن نفت ایران یافته است کالیج 1380 صفحه 89 در اینجا زبانه های آتش از منابع گاز طبیعی شولور بوده است کتاب پهلوی بندهش از آتش گازسوز خبر می دهد بندهش 1369 صفحه 92 نگاهبانان آتش به شیوه دیرینه بر چهره پارچه می بستند که امروزه آن را پنام مینامند. مراسم دینی با شاخه های درخت که به آن برسم می‌گویند و فدیه کردن نوشابه هوم برگزار می شد. کالج کالیج 1380 صفحه 90 همچنین رسم دخم گزاری جسد همراه با شیوه های دیگر و تدفین جسد در آن روزگار برقرار بود است کالیج 1380 صفحات 90 تا 100 آین عرفانی مهر پرستی و عرفان پرشوری که مانی دین خود را بر پایه آن بنانهاد در روزگار پارتیان شکل گرفت کالج 1380 صفحات 90 و 91 در آن زمان با بردباری و تساحل نسبت به همه ادیان رفتار میشد. دین یونانی بیشتر به جامعه هلنیستی محدود می‌گشت. سرودهای ستایش آپولو را در شوش بر سنگ کندند و تصاویر خدایان یونانی مانند زئوس و هرقل و آتنه و آفرودیت را بر مهرها و سکه ها نقش زدند. اما در هر جا که نقشی از خدایان یونانی دیده می شود یا نامی از آنان می آید باید جستجو کرد که آیا در فراسوی او یک خدای شرقی نهفته است یا نه